امروزه خاطر اینکه مصارف بر اساس تکنولوژی و سنت جهانی همسان شده مصرف مشترک با حوییت مشترک شده و این کدبندی بر اساس کالاهای مشترک خود به خود جامعه شناسی جدید رو پرید آورده در خدمت هم پنهان شرکت های و امپراتور های پنهان و امپراتوری های پنهان که مردمان رو تحت عنوان برابری و همسانی یعنی دموکراسی، بتونند عنوان مهره ها و اجسامی بیجان و پوچ و هیچ صد شده در خدمت سلطه جهانی خودشون بگیرند امروزه برخلاف قرون قبل منابع طبیعی دیگه عرضش در جرول نیست برای و جهان بلکه انسان ها و گله های انسانی و توده ها بسیار بسیار رجاستر و مهمتر و واجبتر از منابع طبیعی هستند حتی کار ارزان و فراوان هم دیگه این روزی کم کم داره تبدیل ازش در نزده امپریادیستا و چهان و شرکت هایی که در سراسر جهان مثل اختپوست دارند جوامه رو تحت فرمان خود میگیرند و اعتداریت میکنند. از چه طریق؟ از طریق ها ببینید ما می نفس انسان در قلم آخر زمان به برون افینده شده در واقع نفس این اراده خود در واقع مشوق فراده اراده انسان در تکنولوژی ماده و پیش رفته حد تکنولوژی همواره تکنولوژی ارتباطات بوده این ارتباطات که می فقط راژیو و تلویزیون و معواره ها نیستند بلکه استباتات خود اوتوموبیل و قطار و هواپیماها و موشتکا هم استباتاتند برای که حرکت و صورت رو سریعتر میکنند که البته ماوارها و موشتکا ها سریع ترین است امروزه در واقع اراده افراد و گروه های بشری و کل بشریت رفته در ماوارها و از بیرون از بالای زمین بر انسان ها القا میشه و آنها فرمان میرانه فرمان میرانی و آنها را تحت سلطه صاحبان تکنولوژی در میاره صاحبان همان ماباره ها در میاره بنابراین این ما میبینیم که یک انسان پود شده و بیراده در اصده آخر و زمان در آخرین وضعیت بشری انسانی است که از خود مطلقاً اراده نداره حتی از خودش به خودی خود هیچ احساسی نداره حتی هیچ آرمانی نداره حتی آرمان ها و احساسات هم از طریق ماباره ها کلغا میشند و از این طریقه که این شرکت ها ملیتی و امپراتور های پنهان میتونن افراد و گروه رو کود بندی کنند و به صورت اطلاعات طبق بندی شده در نظر خودشون نگه دارن و براشون برنامه های ساله و دویست ساله بریزند خیلی ممنونم از توضیحاتتون استاد اینجا چند تا سوال بر من مطرح میشه شما در صحبتاتون راجب بی ارادگی و پوچه بشر رو صحبت میکردید همطور که شما هم خوب خب این یک واقعیت بشریست این بی ارادگی. اما از سمت دیگه ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که لیبرالیسم و دموکراسی به عنوان دو آجی بشر مطرح شده این بشر بی اراده رو در واقع دارای اراده بکنه و گویی که این ادعاها همه دروغه و فریبیست برای بشر خب آمین اینکه این سوال مفرح میشه که چطور شده که بشر این دروغ رو باور کرده خب بشر امروز شاید بیش از هر دورانی خودش رو دارای اراده میدونه و برای همین بیش از هر دورانی خودش رو آزاد میدونه و دیگه شما ثابت کردید که امروز روز بیشن سردورانی بی اراده است خب این تناقض چیست و این رو توضیح بدید صحبت از نفس قحطی زده شد همطور که ما میدونیم نفس قحطی زده بشر اون رو مبتلا به کل دنیا کرده <تصفيق> یعنی انتا که با عنوان جهانی شدن و آنچه به عنوان عرصه ارتباطات در این جهان مطرعه همه حاصل نفس قهتیزده بشه بشه میزانی که در نفسانیت خودش دشوار کم بوده دوچار زرفه و همون میزان نسبت به دنیا و مادیت دنیا با شده و در واقع میشه گفت جهان خارتر شده بلانده شده این بلاندگی رو ما در تمام ارکان وجود یک بشر میبینیم چه در خوردنش چه در شهقتش چه در لذت خواهیش بازیگریش اینها همه برخواسته از اینه که نفس بشر به هیچ عنوانی نمیتونه ارزا بشه خرش نفس بشر قهدی دردتر شده بیشتر نیازمنده این بوده که دنیای بیشتری رو به برده تا کمی به ارزای نفسانی خودش درستیابه و با راه صحبت شده و خودتون در صحبتون گفتیم که قانون اراده برشری دل برشر هستش امه. همطور که بارها می صحبت رو کردید نفس بشر دو رکن اساسی داره یکی ذهن شخص یکی دلش ولی موتور محرکی نفس برشری که اون رو به حرکت و اراده و عملی بامی داره اینها از دل نفس هست که ایجاد میشه پس در واقع وقتی که ما صحبت از نفس قهتی زده میکنیم باید بگیم که این دل بشری که دچار قهتی شده به میزانی که دل بشر دچار قهتی شده نفسش چنین جهانخار شده و چنین بلنده شده و نیازمند این همه ارتباطات گوناگون شده تا کمی به خودش بباورونه که وجود داره و احساس هستی داشته باشه اما تغذیه کننده دل بشر چیست؟ خب راجب محبت باید صحبت بکنیم. این محبتی که دل بشر رو آرام میکنه و به رضایت می رسونه. به میزانی که دل یک بشر این محبت رو دریافت میکنه نفس بشر از قحی زدگی خارج میشه و به آرامش میرسه و این بلندگی درش کاهش پیدا میکنه اما پس باید این نتیجه رو گرفت که به میزانی که بشر امروز محبتی رو دریافت نمیکنه، چنین جهان خار شده و به میزانی که محبتی رو دریافت نمیکنه بی اراده و پوچ شده. یعنی دلش دیگه نمیتونه در اون عملی رو ایجاد بکنه، حرکتی رو ایجاد بکنه. و برای همین برای اینکه حتی قرارایض خودش رو هم ارضا بکنه نیازمند اراده هایی است که از بیرون برش وارد بشه. اراده هایی که همطور که فرمودین از طریق ماهواره ها و سایر ارتباطات به بشر امروز می خب خب اینعری که ما داریم صحبت می از بابتی باید بشر رو بیگناه بدونیم. خب اینکه جوان امروز یا بشری که در همچین دورانی به دنیا میاد این محبت رو از والدین و خب کانون اصله محبت معمولا قدقل برای یک کودک والدینش هستن به میزانی که چنین محبتی رو اون کودک دریافت نمیکنه، در سهل رشد خودش قطعی زدیتر میشه و بیشتر و بیشتر به دنیا مفتلا میشه و جهان خوارتر میشه هم از لحاظ هم از لحاظ اجتماعی از همه جوانب این بلندگی شدید تر میشه خب این جوان یا این کودکی که در این دوران به دنیا میاد رشد میکنه گناهی که نداره که این محبت رو دریافت نکرده بشر آخر زمان بشر قهتی زده محبت و به همین دلیل مبتلا به این ارتباطات شده و حتی اراده قریدش رو از دست داده این که در گذشته بشر گذشته با این محبت چه کرده در صورت بشر امروز چه تقصیل داره مم. که اون گناه رو این برگردن گرفته اگر پدران و مادران گذشته ما با محبت بعد بدتار کردند یا به هر دلیلی محبت رو از دست دادند کودکی که در این دوران به دنیا میاد دیگه گناهی نداره پس ما باید از در واقع نسلی صحبت بکنیم که عذابی رو داره میکشه و مبتلا به عذابی شده که خودش گناهی رو مرتکب نشده بوده گناه رو گذشتگان کرده بودند و این نسل جدید حالا در واقع داره اون عذابی رو که دیگران و گذشته اون باید میکشیدن این میکشه و به همین دلیل بی اراده شده پوچ شده هیچ شده و مبتلا به این همه اراده های جهان شده که اون رو روز به روز دارن به سمت بازیچگری سوق میدن من از شما خواهش میکنم که این مسئله رو بیشتر توضیح بدید چون واقعا من حتی قد عنوان یک نماینده از نفس دارم با شما صحبت میکنم که من چه تقصیر داشتم و چه گناهی من مرتکب شدم که از والدینم محبتی رو دریافت نکردم و به چنین ورطه ای افتادم که باید الان اراده من رو ماهواره تعیین بکنه و من این چنین شدم گناه من چه بوده و چرا در واقع این عذاب رو من باید به گردن بگیرم خیلی متشکرم اگر این رو توضیح بدید من مرد سوالهای ارساسی را بسیار متنابیه هست من قبل از پرداختم به سوال دستی شما که ماجرهای محبت هست دو دید نکته دیگه به عنوان جنبندی این صحبت را از بکنم ببینید ما یک اشارهی به بنیاد نخستین مدنیت دموکراتیک داشتیم در یونان باستان و در, آت... در شهر آتن قرن پدروشی قبل از ملاد مسیح ما اونجا نشون دادیم که چگونه نخستین دموکراسی در شهر آتن پدید آمد و درکن اساسیش در واقع مجسمه اوریان خدایان بود و رسیده می میشد و به پاش قربانی میشد. قربانی هم میشد ما بسی بیار بیاری سر بریده میشد روپای های آپنون سر بریده میشده این وزه اتا به دست اومده سرهای بریده شده در پای مجسمان ها یک رکنش بود رکن دیگرش ما گفتیم که پلیس بود حکومت نظامی بود همونطور که گفتیم که نقص این شهرهای دموکراتی که به سل مدر اروپایی در اون دوران همه با اسفند پلیس بوده مثل متروپلیس، پولیس، یا حتی همین خودمون اینا اسمای تحلید از یونام بوده بنابراین پس این مجسمه ما گفتیم در بحثات قبلی به عنوان مود یعنی بوت، مدرنیزم، تجسم پرستی مجسم پرستی یک رخشیش بوده دوومیشان پلیس و القای وحشت حراس و ارعاب یعنی تروریسم. نورانی مدرنیسم و تروریسم در اوج تاریخی و همیشگی دموکراسی بوده. همون دموکراسی که نخستین قربانیش رو در هم دوران از بزرگترین حکیم اون دوران گیره و اون سقراط حکیم بود. چون سقراط حکیم ناباش بر علیه اصول دموکراسی اون دوران. ولی هم اونو منحت مذهت می‌دونستان. و فاسد و ضد بشریت و تمدن میدونستند. سوارد. این امروز هم نگاه کنید این معوارها چه میدند یا بوت میدند بوت بوت مانکنیزم مدرنیزم چه کالا چه سکس فرق نمی‌کنه. چه جلوه های ویژه ها به کامپیوتری همین رو بوت ها هستش که به نصیبه میشه یعنی پس مدرنیزم نگروکنیدوکراسی که به اشد و کمالش داره میرسه و تروریسم یعنی تفکیهات امحاء جان این های, های بیولوژیکی میکروبی شیمیایی کلا راکای هستی و ایجاد حراس نه فقط از به تسلیحات به شیوه مختلف خود این ویروس ها به شما نگاه کنیم که خودشون تولید کرده این اینا هم دیگری از است ایجاد حراس تروریزم. یعنی حراس افغانی این ما اون باشه اما حتی میدونیم می‌دونیم مثلا این جریانات تروریستی این دو سه دهه اخیز رو دیگه واضح شده و لو رفته که خود این امپراتوری‌های های صنعتی سنتی این رو حتی به وجود میادن و تغذیه میکنن و سرفا نگه میدارند این مهرس شده اینا به دردشون میخواه خودشون تلوریست های برعلی خودشون ظاهرن دارن تربیت میکنن این ظاهر وزی هست بنابراین مدرنیزم و تلوریزم درکنه همی کیز کش میشد است و با یعنی آزادی این تناقضی که فرمودید که بشر در عین اشد بیارادیگی بیش از هر زمانی احساس اراده میکنه این خیلی جالب ولی احساس اراده میکنه با خصوص که در پای کامپیوتر و اینترنت نشسته و نبض ها مستقیما بر شریان های قلبیش وارد میشه در اونجا بیش از زمانی احساس اراده و خود خدایی داره درست از زمانی که بیرد از زمانیه تا یک بازیچه محض و مطلقه یک بازیچه است و بازیگر هم نیست انسان پشت یک بازیچه ای این احساس اراده ارشد بیرودی این خودش یک دیالکتیک یعنی تلاقی وجودی و, و, و روانی که ما در جای دیگه هم بحث کردیم اینجا هم نمی‌رسن این بحثون بحث به روانی وجودی به بیان فلسطحی و حکمت معیشی همین اشاره میکنیم که ببینید ما قبلا گفتیم که آنچه که نفس اماره انسان نامیده میشه که این همون نفس امارت که ظلم رو به این بیرادگی بست و بابیشه چیزی چیزیست که اسمش مدرنیزم و تروریسم. از این طرف این نفس و در مهورش دل انسان و واسطه این مده این بطه ها مفتون مجدوب و تلس جادو میشه و از دست میره از این خب این افصال گستیفتگی مطلق بدید میاره همون امپراتورن ها رو نمیذاره که این گلهای افسون شده رو مهار کنند خب رکنه دیگه تروریسم وحشت بترس آخو خب از این تلیل اول اونها رو بیخوب میکنند و بعد اونها رو زنجیر میکنند و بعد در خدمتی برنامه های خودشون بیده. ببینید اگر نفس اماره انسان در قلم رو به مرفعی جنی نفس اماره نفس یعنی افسرگو این یعنی نفسی بیراده اتفاقا نفس یاقی و دیوانه و اتفاقا تمام سر پیلوی انسان از نفس همینه که انسان در این بیرادگی احساس اراده می کنه. احساس و قرور می کنه. دونیه خودفرگی دروغ این از ویژگی های روانی عملکرد نفسه هم که در هرچه دیوانترره بیشتر احساس عقلق را می کنه. پس بیخداری بیشتر احساس خود میکنه. این احساس خود غرور دروغ یه توهمه. این موباسی بدونیم در عملا مشخصه ما میدونیم همین انسان های که در پشت مثلا کامپیوتر و اینترنت احساس خدایی می کنن در عمل واقعی زندگیشون بازدلترین هیچ پوشت این آدم ها هستن و هنوز اتیاج به کسی دارن که اینا رو ترخوش کنه ما قول بچه های این رو ما قبلا بحث گردیم این قول بچه ها حاصل کمچین وضعیتی هستن در واقع پس عدیل ها داست که این قلم رو قلم رو اراده به بیرادگیست. یعنی بشن از بیرادگی خودش و از نمایش بیرادگی و جنون خودش یک لذت مالی خودی هایی میباری بحث دیگر ما داشتیم در حول مهور مسئله تک می بود که این سوال همیشه که انسان که من چیستم این من اماره در واقع انسان وقتی نگاه کنه از چشمه رفت وقتی از خودش می من چیستم در واقع می بینه که من نیستم ببین هم اراده بی است امروزه این قدم روی تکنولوژی قدم روی برون افکانی این بی ارادهگیست فعال شدن بی است خوب اگر ما میگیم که لیبرالیز و دموکراسی در قلمرو به فرهنگ بزرگترین دجال به این حفظه درست به همین معنی هست. این ایدولوکا و ایدولوژی دموکراسی و لیبرالیز میگه از روما که نه شما هستن بیراده نیستید. ببینید رعی میدید تو صندوق میدید رعی میدازید. ببینید چه خیلی حفظه این شما هستید که دارید انتخاب میکنید سرمه بشته خودتان را. ولی کی رو و چی رو انتخاب میکنید واضحه همون کس و همون چیزی رو انتخاب میکنند که از طریق این به اینا داده شده بسی که انتخاب موجود نداره بنابراین خود این بدون دموکراسی این تمدن جدید نمیتون سرپای خودش بند باشه این تمدن این امپراتوری جهان و آدم خار تار اصلا میگستنه نهموسی مگه بدونه این چیزی که اسمش دموکراسی است که این دموکراسی در واقع میگه گفت از یک لحاظ دموکراسی قلم قلمروی ظهور اراده بی ارادگی قلمروی ظهور نشان دادن اشد بی ارادگی به عنوان اراده واقعی داریم داتچلنی همین دی داتچلنی مولیکولیاری دیگه اشد بی ارادگی و بازیچگی و هیچ چیز رو با چه می نمانه که نخیر تو خود خدایی هستن نیمان اصفه اراده بند خواهی خب از این برطن که بگذاریم برسیم به سوال دوم شما که مسئله محبت بود من یک نظره دارم که انظر شخصی خودی من قبلن هم چند بار تر گردم یک بار دیگه میگم که ممکنه پاسخی آنن ارزا کننده و اقنا کننده ممکنه نباشه، این که امروز چه تخصیبی داره؟ این که اجداد ما محبت بیای الهی رو انکار کردند و همیشه انبیاء و اولیاء رو که قانون محبت و در واقع اهدای اراده به انسان ها بودند و حتی کشتند حدا ما چرا تا تقاس و قصاص اونها رو پس بدیم خب یه سوال اومانیستی و بشه دوستانه خیلی پشنگ برای حقی است خب نمیشه یک پیغمبر ای امام ناجی یک بار دیگه ظهور کنن تو ما از طریق محبت او که محبت پروردگار هست قلوب من به توان جان بگیره ببینید اراده از دل ذهنیت برای اراده ای که در قلب پدیدنیال برنامه ریزی میکنه. یعنی قوه اجراییه هست اراده از دل دلی که محبت نداره محبت رو نششیده مشکل محبت نیست یعنی آن دل, دل نیست یعنی آن انسان صاحب اراده نیست حتی همزایی فرمودید قرائز حیوانی بشر نیست از خودش توهی شده و بیراده شده هموسکشالیزم این همه بیماری ها و های جنسی داله برگینه که حتی قرائز حیوانی براز بقای حیات بشر برگویزنین بوده هم حتی عدی شده. و شده ببینید مسئله تا اینجاست ما شببت بخصر انتخاب انسانی و اعدادی نمی کنیم شببت سر بقای جانوریه بقای جانوریم از ارازه خودش تویی شده به میشتی و اقیم شدگیه قرائز ما داریم بیریم خب مثلا شما قابلن درسته من نظرم اینه که از چه آخر زمان همطور که قرآن عادیث ما از چه یکی از نشانه هاش این است که مردگان دوباره زنده میشن و میخیزند ولی این بار مولد داده میشند. به باسته هش مردگان از قبر را برمیخیزند. من متقدم اینه با در همشه این در را داریم. مسئله جمعیت که یکی از دکته مسائل حکومت ها و جامعه شناسی است. این انفجاری جمعیت چیه؟ در حالی که پنجاه سال همتر تمام تکنولوژی بیوشیمی در اختیار اقیمسازی و پیشگیری این افضایش جمعیت هست با این حال این جمعیت به سرز هیرتابار و متافیزیکی چی داره تصویلی بالا میره از من ای آمار بلیازیت این جمعیت کسر جمعیت رو در از ده ها و قرار نخی درک کنه این هم جمعیت. اونه حتی از هایی که استفاده میکنن پنجه سالی پیش اینا پیش بینی که در سال 2000 هزار حدود سونی میلیارد جمعیت روی زمین چار میلیارد بیشتر نخواهد به دسته که از میلیارد پنجونی ملیارده. یعنی یک سب که این همه ایداره مبارزه میشه برده طولید مثل خب هزر من این به مفهوم این منای ری برخواستن مرده ها از قررها باقیان دیگر میشه گفتش که شاید مفهوم تناخست رقا کنه تناسخ مفهوم فقط بود دوستی هم دوستیم نیست ما در اسلام داریم منطقی این واژه و کار برده نشده دوستیم ما در قرآن آیاتی داریم که کاملا مترادفه یک معنای بسیار ویژه و توهیدی از تناسخ است اینکه که از انسان ها به سگو سگ و, و, و اینها پیدا میشن یعنی خب تماسی خودیه دقیقت بس کفت چه بسیار خود ماها که اینجا نجستیم خودمون انواسی هستیم که نومست بر از قبل برخواستیم از قبل برخواستیم درست از رهن مادرامون ما اومدیم ببین، پس ما انسان های قدیمی هستیم یک بار دیگر آمده ایم و مولد داده شده ایم این خبر احمد ما در حافظه تاریخی و جنیتیتی خودمون به اصطلاح محبر نافذیدی و جنگ و ادابت و کفرانی را که با انبیاء و اولیاء کردیم و داریم میتونیم از طریق زکس بیاد بیاریم و توبه بکنیم تا محبت پذیر باشیم ناجی، امام، انبیاء و اولیاء اینا هم اگه نمیگیم زنده هستن پس هستن هستند حضور دارن آنها هم باز گشتند و در اون باز میگردند. پس ما در قطی محبت و در قطی وجود دارم ویاولیا و ممامانیستیم. نیستیم بلکه همه آنها در طول تاریخ یک جا میشن. ما در آوازیستنی میگن نداریم در آخر الزمان. رجعت عیسی است، رجعت موسی است، رجعت بودا است، رجعت زرتشتی، حتی در سجاور. مگه نمیگیم وقتی ایمان بزهور میکنه ها ایسا و خود پیانبر و علی و امام حسن و امام حسین و حضرت همه این روح ها هستن مگه بدونی دینی برمیگردن هستن خب این در جمال مؤمنین و مخلصین گنابون هستن اونتا در تلیه تا بشریت محبت پذیر بشه ما بعد که انسان در سوی تاریخ مشکل جور محبت ناپدیری نداشته شقاوت یعنی همین شقابت یعنی کفر در قرآن شقابت تلیف شده این کاخران قصیل قلبان شقیه دشمن محبتان به کسی که قلبان بین هم محبت کنه دشمن هم فقط کسانی رو دوست میدارن که بین ها تجوگست کنن بین ها ستم کنن با اونها رو گمراه کنن اونها رو خال و خفیف کنن هماغت یعنی همین دلی کفر یعنی هماغت یعنی شقابت بنابراین جد واسط این صحبت ها زمینی برای ذکر است. و به ما باید درک کنیم که اینها قابل و جبران بشر امروز بدبختر از بشر گذشته نیست از هزاران جنب خوشبختر هم هست این صحبت که ما ترک کردیم مطلقا نباعثی نامید کننده باشه طبقا نباعثی نامیدوار کننده باشه بشر در قلم رو به امکان تجربه از نفس و حیات اخروی خودش امروز از کارگزار خودانی شده نبوده. ماشاءالله تکنولوژی و تکنولوژی رو ما گفتیم اینها خیلی جبری هستش که البته در اراده صاحبان تکنولوژی نیست. انسان‌های عارف و مؤمن میتونن از خیلی تکنولوژی برخوردار بشن. بزرگترین خیرش اینه که اون جبری و نفس رو انجام میده و انسان میتونه به کمان معرفت عینی برسه. به عنوان به عین الیهین درسه. از در واقع احصای این یقینه که تمام معارف بشری به یقین علی و حسی و پوستی بوشتی میرسه پس میتونه به انسان یک بیداری بسیار جدید و بکر رو بده که هرگز قبلا مای نبود برای انسان این بیداری میتونه به توبه بزرگ و بکر به یک جهانی برسه و بشری از آماده کنه برای پذیرش آن محبت الهی که در وجود امام و اون ناجی آخر زمان ها شکار میشه اون امام یا ناجی آخر از یک در حال اصلا موجودش نیست امام امام محبته همونطور که امامان همیشه امامان محبت بودن وصفه محبت بودن ما اگر فکر کنم که امام میاد نمودان با اسلحه این اصلاحه فوق اتمی میاد این اصلاحه اتمی در هر اینا این ها فکرهایی هستش که وجود داری این فکرهایی دجالیست و نخیر. اصلاح امام اشقه و انسان به میزانی که طالب اشق محبت میشه امام آماده زهور هست و امام طالبان محبت رو نجات خواهد داد تشنگان محبت تشنی محبت این تشنی اراده تشنی محبت این تشنی اراده تشنی داشتن قدرت انتخاب و اختیار برای نجات خیشتن بله این ها با شما از کاملا درسته انسان بیخودی که داخل چنگالموری داره روزدن دیگه میکنه حتی اراده به نجات هم درش مرده حتی نمیتونه بخواد که نجات پیدا کنه تا اینکه بتونه که بخواد نجات پیدا کنه حتی اراده به نجات امید به نجات هم درش نیست میل به نجات درش نیست و اینکه اون اصلا خودشون او اون اصلا نیست او اصلا نیست پس انسان مؤمن لایق به موزه با این نگاه و شاهد و ای باشه تا به این انسان نابود شده نابودیشون نشون بده نیستیش رو به این نشون بده از یک از مؤمنان آینه های مردمان هستند. امام در این حال امام محبته و در این حال امام وجوده وجود میبخشه خود نور وجود هست لذا این نور وجود وقتی می بر عدم بر عدم این آدمیان آنها عدم خود بنابودی و میسیدی و هیچی بوچی خود را میبینند و طالب موجود میشند. به این پس وجود اراده، عشق، نجات همه اینا یک مرمول هست. یک مثلا نهستش. اگر سوالی بایید بزارید. خیلی ممنونم استاد از توضیحاتتون است. من از صحبت شما این رو کردم که باید بگیم ظاهرا همطور که فرمودیم رسولان و امامانی واضح و مشخص در جهان امروز وجود ندارند که خودشون رو علنا معرفی بکنند اما در کل جهان افرادی وجود دارند که به واسطه ای ایمانشون دارای محبت هستند و باید اینطور گفت که هر بشری در طول عمر خودش هر بشری که همین اکنون داره زندگی میکنه در طول عمر خودش با یک مؤمن و یا با یک فرد با محبت روبرو میشه تا بار دیگه خودش شخصا محبت رو تجربه بکنه اراده رو تجربه بکنه و خودش شخصا امتحان بکنه خودش رو نه اینکه امتحان و یا آنچرا که پدران و مادرانش در گذشته داشتند رو این بخواد به صلاح پاسخگو باشه اون پاسخگوه عملکرد خودش در قبال این فرد مؤمنیست که به اون محبت میکنه و بر اساس این عمر کرد هست که براش عذاب پیش میاد یا مسایدی پیش میاد خب شما صحبت ذکر کردیم. من فکر کنم که اینجا بد نیست که این توضیح رو بدید قطعا شاید کسانی که این سخنان شما رو گوش می دن به خاطر بیارن که در طول عمرشون با چه بشری رو برو شدن که بهشون محبت کرد و باز هم به خاطر بیارن که خود اونها با اون فرد چه کردن بله بله بله. و این ذکری از باب گذشته زندگی خودشون بشه نه گذشته اجدادی که همه وقتی بگیم ذکر میگن آقا ما از کجا بزنیم پدر بزرگ باون جباره بود گذشته همین زندگی خودشون و میم هر کسی به یاد میاره که واقعا در طول زندگیش هیچ مؤمن رو یک فرد خوب رو دید که اون رو دوست داشت ولی اون اون چه کرد برای سوای این مسائل من بمی کنم این توضیح لازمی که شما به ما بگید که چطور ممکنه یعنی از لحاظ روانی، ذهنی، احساسی چگونه ممکنه فرد محبت ناپذیر باشه ببینید وقتی صحبت از محبت ناپذیری می کنید هر کسی که این سخن رو بشنبه این رو در همون ابتدا رد می‌کنه. یعنی میگه امکان نداره که من محبتی رو دیده باشم و اون رو پس زده باشم پس محبت ناپذیری که شما دارید صحبت میکنید باید اثبات بشه یعنی از لحاظ بشری و یا حداقل آنچه که فهم بشر امروز هست این صحبت بسیار سنگینه که فرضی فکر کنه محبتی بهش شده و ایشون نپذیرفته چون نمیتونه فهم کنه چطور ممکنه همچین چیزی و مجبوری که این اصلا محبتی نشده من فکر شما این رو باید توضیح بدید که چه واقعا با کنشی و چه جریانی از لحاظ ذهنی روانی احساسی در فرد پیش میاد که با وقتی با فردی مواجه میشه که اون رو دوست داره اون رو پس میزنه و دو مرتبه همون جریانی که در کل تاریخ بارها تکرار شد و تمام انبیا به رسوند به شکلی در جهان امروز تکرار میشه به شکلی خوب بسته به این رو توضیح بدید تا برای همه بیشتر فهم بشه که واقعا چه کردن و چرا این کار رو کردن تا این توضیح داده نشه این حرف شاید سنگین باشه و همه قبول نکنه متشکرم. خواهش میگنم بسیار اساسی یه و این صحبت در این مقوله نمیگونجه یعنی بحث بسیار مبسلی نیهاد حتی توضیح مختلفت در جای دیگری ما بتونیم این بحث عشق و محبت رو یه بحث مستقلی داشته باشیم همینقدر فقط شاید بشه اشاره کرد که ببینید بشر این روز یک بشر جاهل اصلا به چی چیزی محبت میگه آه. من به چی گرفتی میگم فلانی مثلا خیلی من دوست داره میکرسی که هرچی من میگم و هرچی که من میخوام رو انجام بده و خواستای نفسانی من رو تونتون کنه، ها و مورید نفس من باشه خب من میگم این آدم به من محبت داره واشق منه و محبت این در واقع که در خدمت بیرادگی اون قرار میگیره آفریم در چون نفس افرگوسیخته است که دقیقه هم میذاره کسی که مثل که ننایی که بچه ها موریر نفس بچهشون هم دیگه این بچه وقتی بزرگشه چی میشه؟ یک دیبه آه؟ و حق بابا, و بابا نرم که به میذاره حسابی ازشون انتقام میگیره دیو بار میارن یک دیب و بیراده مبینید؟ بری و حالا همه بابانه های که هم بیش اینطور هستن با بچه هاشون اونهایی که امکانات ملیشتی و قدرت و پول بیشتری دارن بچه های بی اراده تر و لاغبانی تری بار میارن بی تربیت میکنن دیوانه تربیت میکنن دیوانه یعنی بی اراده یعنی بی اختیار یعنی هیچ رو پوچ همان با قطعی رو غرب خیلی محبت باشه در فرد مقابل محبت ایجاد میکنن اگه محبت ارزش ازالی و است، پس اختیار عزت نفس ایجاد میکنن اتفاق و نفس ایجاد میکنن اگه تر ای که محبت غریبی کول معمولاً مادرها به بچه هاشونه خب امروزه بیشت از زمانی مادر، درها به بچه هاشون سیلویس و خدمات میدن بخاطر همون شراید مکانه آدتی که بودوده. این مدرگیز و تکنولوژی در خیال رو داده شده امروزه به هشت بچه در تاریخ درسته؟ نهی. از این لحاظ. یعنی قرده در اشخ محبت هم این اشخ محبت کرداری که این دودری شده نتیجه چیست؟ آه؟ این فدر ها فقط دارن دیوانه توجید میکنند دیوان سالارها سال واجبون سالارها بی ارادی و بی اختیاری مرز دارن توجید میکنند برای همین نصف این شکلی در واقع میشه گفت بستره این دموکراسی مالی خولیایی و این مدرمیزم است. و همه این بچه که این شکلی تربیه تربی شدن همه همه همه هم بکنید ترولیست در مفهوم تربیتی بیارید این بچه ها این ما میبینیم که ناویترین آزاب دفتر شدن هی خواستو و جنون هاشون بیشتر بیشتر میشه از طریق ایجاد ترول و وحشت در پدرمادرشون از اینا اخخازی میکنند و گاه هنها رو به قتل میرسند ببینیم که این بچه های ترولیست میشن و تهدید و آب و وحشت پدرمادرهاشون رو میکنند. یعنی شما میخوایم به آنچه که بشر را محبت نپذیر میکنه اینه که وقتی میبینه که فردی برخلاف نفسانیت اون رفتار میکنه اون فرد رو پس میزنه در صورتی که همون فرده که اون رو دوست داره آفره ببین پس ما با تحریفمون از محبت 180 ضدیج باستی بارون کنیم وقتی بارون باید میگردیم میرسیم به تحریفه که دین خدا و و علیا و رفا از محبت کردن خب ما میگیم امام سلطان و قصفه محبت الهی و رحمت و هدایت که مومنانه یعنی به اینها قدرت اراده و انتخاب میزه یعنی به اراده میبخشه به اینها حبیت میبخشه به میزانی که بر علیه نفسانیتون مورد خب چرا خب ببین از امام مهم با سکار کنه اطاعت کنه و گفته گوشش که باعث اطاعت مرد بیش رو بکنه از امام خیلی خوب یعنی اون وقتی مرید باشه مرید ازیشه اراده است آه؟ مریدی کنه کسی رو که صاحب اراده الهی است امام مصادر اراده الهی است یک مؤمن در هر درجی پظهری از درجی از همون درجه از اراده خداست به میزانی که ما یک مؤمنی رو تباییت قلبی و عاطفی میکنیم، کنیم یعنی نقصمون رو زور پا ولی بله، نقص امارمون که همون بی ارادگی ما نست ما در واقع بی ارادگیمون رو تحویل اونه ما اون مومن می و در اطاعتی که از ارادهی می میکنیم صاحب اراده میشیم، شیم خب کل دین تا باید به تقواه کرده یعنی زد نقص اماری خودی باشه. چرا برگه نقص اماره تو میفنداری که بیرادگی توست نه اون بیرادگیه سست نفسانماره جنون توست اون تو رو تباه میکنه او جنون توست اون بیرادگیه سست از بیرادگی خودت تبعیت نکن از عقل دینی و از امر خدا و از مؤمنان از امامان و از انبیا و اولیا کن یعنی از خدا تبعیت کن از خود تبعیت نکن وگرنه انقدر شده که تو خود میفنداری اون بیخودیه سست آن بی خودی توست از بی خودی خودت و از نیستی و آدم و تباهی خود پیداوی نه بنابرای این تحریف که ما از عشق داریم میکنیم ببینید تحریفی که این روزه شده عشق داره تحریفی زدونه ببینید یکی از بزرگترین دجاله های آتفی فرهنگی که این دموکراسی یعنی دجالیزم مدرن و این مدرنیزم و تروریزم ورده چیه؟ همه دارن عشق عشق ها؟ در هیچ جای دنیا و اندازه امریکا این واژه شبان رو دو برده نمیشه از ریف و سیاست عشق تکه کلامشونه تا نمیدونم دیگه خانندگان و نمیدونم عرازل و باش همه ترویست و جانیان تبخاران هرفه ای هم از عشق صحبت میکنن بقیه عشق به دیگرانه که دارن جنایت میکنن ببین، این دیگه اصاله دجالیزم و سالاری و جنونه. که اسم این جنایت رو اسم این شقاوت رو عشق گذاشته همونطور که عشق اسم این عشد بیرادگی رو اراده و آزادی و انتخاب و رعی گذاشته ببینید عشد شقاوت اسمش عشق شده پس ما با سی مطبعیم رو با آجگون کنیم برگردونیم سر جان خودش بود از این فرما که در قدم روی معرفت نفس همه واجه ها وارونه و واژگون از آب در میاد انسان در که به میده که آنچه که عشق نابیده میشد آقا این شقابت بوده آنچه که آزادی نابیده میشده اینکه اسارت اثارت آقا آنچه که انتخاب نامیده میشه یک مالی خلیاست هاست آنچه که پیش نابیده میشه سقوط و این آخر بنابراین گلمانتای ازشای این ذکر این هست که ما این ها رو برگردونیم به مفاهیم واقعی خودشون و در این واجه ها واجگون نشیم. نشین تمام واجه های انسان مدرن انسان کافر واژگونه هستند، این مفاهیمی که در, اون در ذات واجه هست در تضاد با مفاهیمی که انسان از اون برداشت میکنند حتی این قلم روی سرهنگ واجه ها لغت و دیکشنریها، فرهنگ لغت ها بایستی واجبون بشن ما نیاز به همچین انقلابی داریم دیگه انقلابات سیاسی و اقتصادی و نمودن سوسیالیستی و دیورادیستی و اینها به درد نمیخوره خواسیقی نداره ما نیاز به انقلابی در قلب معانی و واجه ها انقلابی در اللف های انگیشه و احساس خودمون داریم تا بتونیم واقعیت آنچه که هستیم رو درک کنیم تا ببینیم که آنچه که ما هستی بن داریم این ایتی تا بیستی خودمون رو نبینیم نمیتونیم طالب هستی باشیم. تا شقاوت خودمون رو نبینیم نمیتونیم طالب محبت باشیم. تا بگی خودمون نبینیم ببینیم نمیتونیم طالب به اراده باشیم و تا نشیم و نبینیم این واقعیتهایی واژ رو. تا این عصر وارژ رو درد نکنیم آماده نخواهیم بود برای ظهور آن ناجی یا امام یا هر کسی که در انتظارش هستیم